حکایت، لغمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم نگویند از سر بازی که حرفی که آن پندی نگیرد صاحب خوش، وگر صد باب حکمت پیش نادان به خانن دایدش افسانه در گوش، وگر صد باب حکمت پیش نادان به خانن دایدش بازیچه در گوش،